کتاب زرتشتیان از ایران چه می دانم؟ معلف مزداپور ناشر دفتر پجوهش های فرهنگی چاپ اول سال 1382 این کتاب مشتمل بر 119 صفحه می باشد زبط آزاد به تاریخ تیر ماه 1389 گوینده هدا طالبی تکثیر کننده زیبا مرادی بابررسی ولی الله ساکی تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه مرکز نابینایان رودکی صفحه 3 یادداشت با توجه به تحولات نوین فرهنگی در جامعه امروز نیاز ایرانیان به ویژه جوانان تیزمین و پرسشگر به بررسی های جدید علمی و پربار درباره تاریخ پرفراز و نشیب ایران زبین و دیانت و فرهنگ و تمدن آن بیش از گذشته نمودار شده است. از این رو دفتر پژوهش‌های فرهنگی با شناخت این امر و در جهت گسترش دیدگاه های همه جانبه و عمیق فرهنگی تلاش جدیدی را آغاز کرده و است تا با انتشار مجموعه از ایران چه میدانم مهم دقیق و سودمندی را در حوزه های گوناگون ایران پژوهی در دسترس همه ایران دوستان و جوانان علاقمند کشورمان. کشور قرار دهد امیده است که این دفتر بتواند با ارائه این نوع پژوهشها ها ایجاد پیوندی ناگسستنی میان فرهنگ امروز و دیروز و دوری از هرگونه ذهنیت و جانبداری های یکسویه و غیر علمی زمینه تبادل نظر و اندیشه را میان همه دانش و علاق مندان این عرصه فراهم سازد و در شکوفایی حرکت های نوین فرهنگی و اندیشه پرور و ایجاد آینده‌ی بهتر برای این تر نقشی شایسته و مفید ایفا کند. دفتر پنجوه‌شای فرهنگی محمد حسن خوشنبیس. صفحه 5 فهرست مطالب. پیش سخن صفحه 7 فصل یکم خواستگاه کیش زردوشی. 1. پیامی از فراسوی تاریخ صفحه 12 دو زمان و مکان زرتوشت صفحه پانزده سه داستان زندگی زرتوشت صفحه هفته چهار کهن دینی پیش از زرتوشت صفحه بیست پنج آموزه گاهانی صفحه بیست و یک فصل دوم تحولات کیش زرتوشتی تا اسلام یک دین مادها، هخامنشیان و عشقانیان صفحه بیست و هفت 2. موغان صفحه 33 3. دین در ایران ساسانی صفحه 36 چهار آیین زرتشتی در عهد ساسانیان صفحه 37 فصل سوم از آغاز اسلام تا دوره معاصر 1. ادبیات زرتشتی در قرن سوم هجری صفحه 47 دو محدود شدن جامعه زرتشتی صفحه 51 س. ارتباط با پارسیان هند و روایات صفحه شست فصل چهارم دوره معاصر یک، نسخه های خطی صفحه شست و پنج دو، ارتباط با هند و انک تیل دوپران صفحه هفته و یک سه، ارتباط با هندوستان و لقب جزیه صفحه هفته و پنج چهار، مشارکت در خدمات فرهنگی و اجتماعی صفحه 78 فصل پنجم دوران تجدد 1 پس از مشروطیت صفحه 87 دو, دو. مجامع و انجمنها صفحه 94 3 مشاغل و, و پیشه‌ها صفحه 97 فصل ششم آداب و باورهای کهن و تحول آنها یک. باورها و عقاید ویژه صفحه 101، دو زیارتگاه‌ها و پرستشکده‌ها صفحه 106، سه نیایش‌ها و صفرهای مقدس صفحه 108، چهار جشن‌ها صفحه 110، سخن پایانی صفحه 115، مأخذ صفحه 117. صفحه هفت پیش سخن ایرانیان زرتشتی پیرو زرتشت پیامبر باستانی ایرانند دین زرتشت پیش از ظهور اسلام دین رسمی این مرز و بوم است و اکثریت ایرانیان پیرو آن بودند در کیش زرتشتی در دوران باستانی خداوند بزرگ را با نام اهورا مزدا این نام امروزه به اورمزد یا رمزد تغییر یافته است زرتوشت را نخستین پیامبر الهی جهان میدانند زرتشتیان را اصطلاحا به دین و پیروه به دین بهی میگویند امروزه شمار زرتشتیان ایرانی مقیم ایران نزدیک به سی هزار نفر است و بیشتر در تهران زندگانی میکنند جز این در یزد کرمان، شیراز اصفهان و اهواز و نیز دیگر شهرهای ایران سکونت دارند همچنین زرتشتیان ایران از دیرباز به هند، هندوستان و پاکستان کنونی رفته بودند. اکنون هم به ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، سوئد، استرالیا و کشورهای دیگر مهاجرت کردند. در واقع دو شهر کرمان و یزد در قرن گذشته نخستین مسکن و معوای اصلی زرتشتیان ایرانی بوده است و از آغاز این قرن دست به مهاجرت زدند. دین زرتشتی یکی از چهار کیش رسمی ایران است. این اقلیت مذهبی به موجب اصل سیزده قانون اساسی ایران در حدود قانون در انجام دادن مراسم دینی خود آزاد است و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آین خود عمل می کند اصل چهاردهم و بیست و همین قانون روابط اقلیت های مذهبی با دولت جمهوری اسلامی روشن می و بنابر اصل شست و چهارم آن این اقلیت مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارد بنابراین مواد قانونی و با استناد به قرآن مجید مسلمانان موظفند با افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند مشروط بر اینکه اقلیت‌های مذهبی اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند مواد قانونی دیگر در این باره بر همین اساس استوار است ایرانیان زرتشتی در زندگانی اجتماعی و اقتصادی کشور در قرن حاضر مشارکت تام داشتند اینان که از دیرباز راستی و درستی نامور بودند به رقم مشکلاتی که روی می داده است حتی توانستند گام های مؤثری در پیشبرد جامعه بردارند ارباب جمشید جمشیدیان تاجر و صراف بزرگ دوران قاجاریه بود و فقط پس از اتحاد و دسیسه روس و انگلیس بود که قدرت اقتصادی او از میان رفت در قیام مشروطیت زرتشتیان مشارکت ورزیدند و کشته دادند. مدارس بزرگی در کرمان و یزد و تهران به دست زرتشتیان ساخته و اداره شد. این اقلیت کوچک که دارای حداقل میزان بی است، در احداث بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی و فعالیت‌های مانند آبیاری و ساختن کارخانه و حتی ریشه‌کنی مالاریا نقش مهم و سهم نمایانی داشته است. شماره جانباختگان زرتشتی در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با عراق با توجه به شماره جمعیت در صد قابل توجهی است. امروزه زرتشتیان چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان پوشش متمایز کننده ظاهری ندارند اما در ایران تا چندی پیش در مشخصاتی مانند رنگ جامعه متمایز بودند. زنان زرتشتی هنوز در شهر یزد و گاهی در کرمان لباس خاص خود را میپوشند و های رنگین و پوشش‌های خاص آنان گاهی در دیگر شهرها هم دیده می‌شود. زبان زرتشتیان متمایز و خاص است و همراه با فارسی گویش بهدینان را نیز به کار میبرند. بدین شمار است که اقلیت زرتشتی ایران در پوشاک و زبان و بسیاری از آداب و رسوم پیش از این متفاوت و متمایز بودند حالان که چون این تمایز اینک فقط در زمینه باورها و آینهای دینی بیشتر به چشم میخورد. زرتشتیان را باید پاسداران و نگاهبانان سنت و آینهای کوهن ایرانی دانست. نه تنها آداب باستانی و جشنهای ایرانی را نگاهداری کردند و آنها را برگزار می بلکه در جزئیات زندگانی به گواهی اسناد و مدارک مکتوب بسیاری از شیوه قدیمی را نگاه داشتند. روحانیان زرتشتی که موبدان و دستوران خوانده می پاسداران سرسخت و دانشمندی بودند که فرهنگ و کتابهای کوهن را نگاهداری کرده و به دست پژوهندگان و علمای دنیای جدید سپردند. همچنین جامعه زرتشتی بسیاری از شیوه های کوهن و رفتارهای باستانی را حفظ نموده است گرچه گاهی اثبات قدمت آنها دشوار مینماید چنانکه هر چند میتوان نهادن بوی خوش بر آتش را دنباله سنتی دیرینه دانست نمیشود یقین آورد که رسم هایی مانند همراه کردن آویشن با هدیه و افشاندن آن بر سر و دوش عروس و داماد و کاربرد آن در جشن که اینک در نزد زرتشتیان ایران دیده می شود در روزگار ساسانیان هم باب بوده است یا خیر؟ در هندوستان و پاکستان زرتشتیانی زندگی می کنند که آنان را پارسیان می نامند پارسیان شپقاره هند از ایرانیانند که در آغاز قرون اسلامی و شاید قبل از آن به آن خطه مهاجرت کردند و در آنجا با محیط خو گرفتند پارسیان هند با زرتشتیان ایران از دیرباز مراوده داشتند و به طبعه ایشان ایرانیان زرتشتی نیز به آن سامان رفت و آمد می کردند. این ارتباط موجب شده است که از طریق هندوستان مظاهر فرهنگ و تمدن اروپایی که خواه نخواه در دوران سلطه انگلستان به این شبه قاره رسوخ کرده بود به جامعه زرتشتی ایران زودتر بیاید. نمایندگانی از جامعه پارسیان به ایران سفر کردند که از حدود دو قرن پیش در زندگانی اجتماعی زرتشتیان ایران تأثیر داشتند، مثلا سرمایه برای ساختن نخستین مدارس زرتشتی که از نخستین مدارس مدرن ایران است اغلب به وسیله زرتشتیان متمکن ایرانی و یا از دهش خیرندیشان پارسی تأمین شده است لو بیشتر این مدرسه ها شاگرد و معلم هم زرتشتی بودند و هم غیر زرتشتی همچنین چاپ کتابهایی مانند شاهنامه فردوسی و سامنامه منصوب به خاجوی کرمانی همراه با کتاب دینی مقدس اوستا و کتاب های خاص زردشتی مانند ارداوی رافنامه ابتدا در هندوستان صورت گرفته و سپس به ایران آمده است. این گونه ارتباط در چند دهه اخیر دیگرگون شده است. گردآوری آگاهی درباره جامعه ایرانیان زرتشتی در زمان معاصر کاری دشوار است چه افراد آن در واقع در میان اکثریت دیگر ایرانیان پراکنده و با آنها دمخور و آمیختند این آمیزش در سطح اقتصادی و مراودات اجتماعی در شهر تهران و نیز دیگر شهرها جز تا حدی در یزد و کرمان بسیار جدی است فقط بافته قدیمی برخی از روستاهای یزد را می شود تقریبا همانند دوران پیشین یافت که در آن زندگانی زرتشتیان جدا و مجزا بوده است. به دلیل این آمیزش در مشاغل و در منازل و مدرسه و دانشگاه ها و دیگر مراکز فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مشکل میتوان جدایی و تمایز خاصی میان ایرانیان زرتشتی و غیر زرتشتی یافت بلکه فقط به آداب و احوال شخصیه و مراسم و آینهای زرتشتی بیشتر میتوان پرداخت. به رقم این گونه آمیزش روابط درون گروهی در میان زرتشتیان به همان شیوه جهان قدیم و به اصطلاح روستایی و قبیله‌ای حتی در ممالک دوردست امریکا و استرالیا باقی مانده است در تهران و اهواز و شیراز و یزد و کرمان و بمبئی و کراچی و نیز تورنتو و سیدنی و کالیفرنیا و مریلند این ارتباط برقرار است و افراد و خانواده ها که از قدیم با هم رابطه و نسبت داشتند پیوند کهن را حفظ کردند. این روابط را انجومن ها و سازمان های رسمی چندی هم تقویت می کنند و به ویژه در برگزاری آین های دینی با هم مشارکت می برزند. اینان در نهایت همه بر گرد آتشکده فراهم می‌آیند و آتشکده بنیادی است که نظرا پیشینه دیرینه دارد و به سنت هندو اروپایی یعنی نزدیک به هفت هزار سال پیش از این روزگار می رسد بدین شمار در واقع جامعه زرتشتی برای رسیدن به شکل قانونی مراحل درازی را پیموده است و بررسی فرهنگ و آین و باورهای آن کار فراگیر و سنگین است. در بادی امر چنین به نظر می رسد که هرچه به ایران باستان باز می گردد و هرچه از آن روزگار در دست است تماما به زرتشتیان مربوط می شود گرچه این حکم به صورت مطلق صادق نیست ولی تداوم پیوسته و ناگسسته فرهنگ كهن ایرانی را در نزد این جماعت بهتر می تواندید این مردم با وفاداری به دین و آین کوهن نیاکانی در حقیقت نمایی مدرن از زندگانی باستانی میهن خیش را نگاه داشتند و به این اعتبار است که ایرانیان کنونی میتوانند آنان را به چشم نیاکان معاصر و امروزی نخیش بنگرند گرچه این قیاس تنها تا حدی درست است و بیگمان گذر زمان نیرومن تر از آن است که این همه قدمت و کوهنیکی را برتابد این اصافه است که نخستین بخش این کتاب ناگزیر به خواستگاه دیانت زرتوشت و آموزش های پیامبر ایرانی خواهد پرداخت. آنگاه در بخش دوم تحولاتی را بررسی خواهد کرد که آین زرتوشتی تا آمدن اسلام به ایران از سرگزرانی است. در دو بخش سوم و چهارم به اجمال به جامعه و فرهنگ زرتوشتی پس از ساسانیان تا دوران معاصر نظری افکنده خواهد شد. و در بخشهای پایانی وضع کنونی و باورها و آینهای زنده و معاصر را متمه نظر قرار خواهد داد در این بررسی کوتاه و اجمالی به ویژه جامع و کلی بودن آگاهی مندرج در کتاب و دقت و صحت آن مورد نظر است در صفحه دوازده تصویری از زرتشت پیامبر درج شده است صفحه 13 فصل یکم، خواستگاه کیشه زرتشتی نام زرتشت پیامبر تنها نامی است که در زمینه اندیشه و تفکر و دین از جهان باستانی و دیرینه اقوام هند و اروپایی به یاد مانده است این نام و دینی که زرتشت آورده و آنچه که بعدا در پیرامون آموزه های دینی او پدید آمده و بر آن افزوده شده است نقشه بنیادین در حیات اجتماعی زرتشتیان دارد درباره زندگانی پیامبر، افسانه و تاریخ به هم درآمیخته است و نیز دین زرتشت یعنی پیام و آموزش ناب و اصلی پیامبر، در چارچوب و قابی از باورها و آیین‌های پیش از او جای گرفته است اینگونه باورها و عقاید و آیین‌های سال هم تحت تأثیر پیام آسمانی زرتوشت دیگرسان گشتند و هم آنکه در شکل نوین خیش در نزد زرتشتیان امروزی دوام آوردند. یک، پیامی از فراسوی تاریخ. هنگام گفتگو از ایرانیان زرتشتی ناگزیر باید به کیش زرتشتی و زرتشت پیامبر پرداخت. پیام سخن گفتن از دین زرتشت باید به سابقه تاریخی آن و ایران باستان اشاره کرد کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نام دارد و به زبانی است که نام خود را از نام همین کتاب گرفته است، یعنی زبان اوستایی. این زبان با زبان فارسی باستان، یعنی زبان خاندان شاهان حخامنشی که در سنگ نوشته های آنان ضبط شده است، خیشاوندی دارد. و این دو زبان را زبان‌های باستانی ایرانی می‌نامند. زبان اوستایی و فارسی باستان را با سانسکریت از نظرگاه شباهت و خیشی در یک گروه قرار می‌دهند و این گروه را شعبه شرقی زبان‌های هند و اروپایی به شمار می‌آورند. زبان‌های هند و اروپایی امروزه تقریبا زبان رایج در همه ممالک غربی است. این سلسله مراتب خویشاوندی به معنای پیوند فرهنگی و آیینی نیز هست که البته سنت آن به ادواری بس دیرینه شاید 4500 سال پیش از میلاد مسیح باز میگردد و آثار و بقایای قدیمی آن بسیار ناچیز و اندک ولی مهم و پرارزش است در صفحه چهارده تصویری از نوشته از اوستا یسنا هات سوک بند هفت با نویسه فارسی درج شده است نخستین کتیبه‌های فارسی باستان احتمالاً به دوران داریوش یکم هخامنشی پانصد تا چهارصد و قبل از میلاد باز میگردد و اوستا کتابی است بیتاریخ که در طی زمان و با سنتی شفاهی پدید آمده و شکلگیری آن تدریجی بوده است به دلایل زبانشناسی آن را معاصر با ریگودای هندوان می دانند که زمانی حدود 1700 قبل از میلاد آموزگار تفضلی 1375 صفحه 21 برای آن تعیین می شود اما قدمت زمان زرتشت پیامبر را معمولاً این همه زیاد نمیدانند و به ویژه از مزامین کتاب اوستا پیداست که بعداً مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و باورهای کاهن دینی بسیار قدیمی آن تازه تر و روزآمد شده و با آموزش‌های آسمانی زرتشت در گاهان هماهنگی گرفته است. پانویس برای آگاهی از نظریه‌های تازه مخالف با این برداشت به آثار ژان کلنز رجوع شود واجه گاهان معادل سنتی گات‌ها یا گاساها است ادامه متن آموزش‌های زرتشت در گاهان ساده و طبیعی است و اوستا گذشته از آن باورهای کهن ایرانیز در بر میگیرد که مجموع آنها را در کیش زرتشتی می‌توان باز یافت نظیر سنتی که زبان‌های سانسکریت و یونانی و لاتین را در مدرسه های ویژه و آثار فراوان کلاسیک زنده نگاه داشته است زبان‌های باستانی ایرانی را پشتیبانی نمی‌کند فارسی باستان اصلا کاملا فراموش شده بود و دانشمندان در طی دو قرن تلاش دشوار علمی آن را رمزگشایی کردند داندامایوف 1373 صفحات 15 تا 46 زبان اوستایی محدود به کتاب مقدس زرتشتی است که فقط خاندانهای موبدان در طی قرون و احسار آن را نسل در نسل آموخته و در حفظ آن کوشیدند. دو زمان و مکان زرتشت در سنت شفاهی و زندگی زرتشتی رقم و گاه شماری خاصی درباره زمان زرتشت وجود نداشته و رقم 3739 که با نام سال شمار دینی زرتشتیان برابر با 1380 خورشیدی و 2001 و 1370 یزدگردی امروز قبول شده است و کنکاش مبدان تهران و دیگران آن را پذیرفتند بر مبنای محاسبه تقویمی جدیدی به دست آمد است تاریخ سنتی مکتوب برای زمان زندگانی زرتوشت مورد بحث است آموزگار تفضلی 1375 صفحات 16 تا 22 تاریخی که در آثار مکتوب زرتوشتی برای ظهور پیامبر می‌آید 300 سال پیش از اسکندر است بیرونی در آثار الباقیه و مسعودی در مروج الذهب نیز تاریخ 258 پیش از اسکندر را برای ظهور زرتشت یاد می‌کنند بر این مبنی برخی از دانشمندان 600 سال قبل از میلاد مسیح را تاریخ ظهور زرتشت می‌دانند گروهی از دانشمندان از آن جمله نیولی این ارقام و اعداد را به عنوان تاریخ حقیقی نمیپذیرند و همه این ارقام را افسانه و اساطیری به شمار میآورند گروهی دیگر از دانشمندان کوشیدند تا با یاری جستن از شواهد زبانی و تاریخی زمانی برای زرتشت بیابند مجتبایی هنینگ 1365 صفحات 24 و 25 از راه بحث و گفتگو و تکیه بر آثار زبانی و تاریخی و باستانشناسی متأخرین زمان پیشنهادی برای زندگانی زرتشت را حدود 900 قبل از میلاد و قدیمی‌ترین آن را سنواتی بین 1200 تا 1400 قبل از میلاد گفتند، شادروان احمد تفزلی و خانم دکتر جاله آموزگار در مجموع سنوات میانه 1200 تا هزار قبل از میلاد را حدس می زنند هزار و سی سد و هفت و دو پنج صفحه 22 همین گونه اختلاف نظر درباره مکان پیدایش زرتشت پیامبر نیز هست در اوستا از جایگاه پیدایش زرتشت به نام ایریانا و اجاه یاد شده و برگردان آن به زبان پهلوی ایرانویج است که در فارسی به آن ایرانویج میگویند اما منظور از ایرانویج کدام سرزمین است نوشته های و به طبع آنها منابع بعدی محل ایرانویج را آزربایجان میگویند از سوی دیگر پژوهندگان میکوشند به اثبات رسانند که زادگاه زرتوشت جایی در نواحی آسیای مرکزی و به ویژه خارزم بزرگ تا ناهیه میان هندوکش و هامون هیرمند تا زرنگ و رخج است. 3. داستان زندگی زرتوشت تصویر زرتشت فرزانه در تار و پود اساتی رو داستان بافته شده و از افسانه آن سوی تر رفته است. من آن پیر فرزانه ای را که رفته است از افسانه آن سوی دوست دارم. امید. در عوستا گاهی چنان از او سخن می رود که گویا از چهره کوهنی محات در حالی از قداستی دورده است. اگر اشارت روشن خود وی در گاهان سرود آسمانی پیامبر نمی بود به خوبی همه شرایط آماده بود که وجود تاریخی او اصلا انکار شود. به بیان دیگر زرتوشت که در گاهان از خود باسیقه اول شخص مفرد یاد می کند یسن 46 بند 19 همباخ 1991 صفحه 9. و از دشواری ها گلایه دارد و از دست مزد خیش سخن میگوید و خیشاوندان و دوستانش را نام میبرد نکاتی را می آورد که همه مبین زندگانی فردی انسانی واقعی بر روی کره خاک و وجودی تاریخی و عادی است در این حال در بخشی دیگر از همان نوشته های مثلا در وندیداد، فرگرد نوزده، وی به وجودی خار غلاده و شگفت تبدیل شده است. به ویژه در شرح پرتفصیلی در دین کرده هفتم که در زندگانی زرتوشت می آگد و عمدتا برگرفته از کتاب گمشده اوستا به نام سپند نسک است او را برتر از ملائک می آبیم. البته اینگونه استحاله از وجود ناسوتی به وجودی لاهوتی در نزد دیگر روحانیون و یا صاحبان شوکت و شکوه نیز به آسانی روی می دهد. در یسن نو بند چهارده زرتوشت با عنوان توی نامور در آریاویج توی زرتوشت آریاویج همان ایرانویج است یسنا 1356 اول صفحه 163 خطاب می گردد. در فروردین 8 بند 87 یشتها 1347 جند دو، صفحه 78 پس از کیومرث فروهر زرتشت ستوده می شود. انگامی که زرتوشت زاده شد خندید چون بخمن فرشته نیک منشی به او در رسید و منش نیک بخشنده رامش و شادی است. بهار 1376 صفحه 245 قلم نامه بهار 1376 برای بهار 1376 الف آورده شده است به علت تکرار فراوان آن ادامه متن از پرتو نوری که هنگام زادنش از خانه میتافت و از خندیدنش هفت جادوگر بترسیدند و برای نابودی کودک به چارهگری پرداختند بهار 1376 صفحات 246 تا 249 از آن خنده و زایش آبها و گیاهان شادان شدند به هنگام زادن و رشد کردنش آبها و گیاهان بالیدند و همه آفریدگان روشن به خود مجده رستگاری دادند زیرا به خود گفتند که دلیر سراسر زندگانی خوش و نخستین آموزگار کشورها به جهان آمد یه اشتها 1347 جلد دو صفحه 79 سی ساله بود که در روز خرداد از ماه فروردین رساله روز خرداد ماه فروردین بندهای 24 و 25 به همپرسی حرمزد رسید و او را بهمن امشاسپند که خود اقل اول و نخستین پذیرنده دین است بررسی دست نویس میم او بست هزار قطعه سی و سه بند دو صفحه چهارصد به بارگاه خداوند رهنمون گشت وحی زرتشتی را هم پرسی میگویند یعنی پرسش زرتشت و پاسخ دادن خداوند چون گشتاسب دین را پذیرفت و راستی را ستود دیوان در دوزخ پریشان گشتند دیو خشم به سرزمین خیونان به پیش ارجاس به خیونی نابکار تاخت که در آن روزگار بزرگترین فرمانروایان ستمگر بود و او را به جنگ برانگیخت. یادگار زر ایران شرح و حماسه جنگ دینی ایران با ارجاس آمده است. در نبرد و ستیز با تازش و انگیزش دیوان و دیف فرستان کشدار و جنگ سخت روی داد و در این تازش و کوبش بود که سرانجام اشوزرتوشت در و هفت سالگی دین انگامی که هفتاد و هفت سال گزیده های زادسپ بهار 1376 صفحه 258 داشت در آتشکده بلخ به دست تور براتور بررسی دست نویست میم او 29378 صفحه 378 و صفحه 382.1 به شهادت رسید مشهور است که پیامبر تسبیح خود را برکشنده خود افکند و در همان دم او را آتش زد و کشت و این واقعی بود مقدر بررسی دست نویسه میم او 29378 صفحه 300 و 301 این درگذشت در ماه دی روز خور واقع شد دین را که در مینوان نخواست، امشاست بند بهمن نماد عقل اول به مینوی و سپس کی و نخستین انسان آن را در گیتی به صورت کلی پذیرفته بود زرتوشت آن را در تفصیل و کمال به جهان آورد دین کرد بهار 1376 صفحه 210 بند 41 و, و صفحه 24 بند 3 آنچرا که زرتوشت در آوردن دین کرد سه معود آیین زرتشتی یعنی هوشی در و هوشی در ما و سوشیانس به کمال خواهند رسانید